موسا راه می‌افتاد در گمم. درونم پر از اضیاحوست نمیدانم از مادرم بیشتر بعدم میآید یا از روحامی، از روحامی به مادرم پناه آورده بودم و حالا نمیدانم از مادرم به کی پناه ببرم بغض مادرم دست‌های پینه بستش، صورت افتاب سوختش و پاهایی که بره بستش مرا به سوی او میکشد. اما زبان تلخ و گزندهش، دیاکاری و تظاهرش و حسابگریش دورم میکند. چرا به پدرم ناسزا گفت؟ چرا نگذاشت پادر خانه ای بگذارم که در آن زاده و بزرگ شده بودم؟ چرا لیوان آبی به دستم نداد؟ چرا نگذاشت روبرویش بنشینم برایش درد و دل کنم؟ گریه کنم، گله کنم؟ گلبان و خانوم، اگه میفهمیدم کارتون تجیلی و به ای زودی تموم میشه و میستادم براتون میگردوندم. باعث زحمت شدم. شما جا خواهر ما هستین. این حرفا چیه؟ اگه یه موقع با بی, بی خواهر کاری داشتید یه پیغون بدین خودم میام خدمتتون. لازم نیست شما این همه راه بیاین. ما هم جا برادر شما. ممنونم آقا موسا. خدا از برادری کمتون نکنه. این سه چه اتفاقی افتاده. چرا همه تغییر کردند؟ به یاد زمستانی میفتم که موسا روی تراکتور حاج ابراهیم کار می‌کرد. برف تا بالای زانو رسیده بود. سه روز بود مدرسه ها تعطیل بودند. روز چهارم هوا آفتابی بود اما جاده یخ بسته بود. انگشتهام توی چکمه های لاستیکی زغزغ می‌کرد. نوک دماغم بی‌حس شده بود. با دخترهای دیگر تا نیمه راه آمده بودیم که صدای موتور ترکتور را شنیدیم. همه برگشتیم و منتظر شدیم تا ترکتور رسید. پسرها که جلوتر از ما بودن به طرف ترکتور دویدند. ترکتور ایستاد. موسی فریاد زد. نفری پنج قرون. آنهایی که پول داشتند اول از همه سوار شدند. من و ملیه ماندیم می دانستم ملیه برای خودش پول دارد اما به خاطر من سوار نمی شود. وقتی همه سوار شدند موسا فریاد زد دخترمش خواستم چرا سوار نمی شی؟ ملیه گفت پنج قرون ندارم موسا گفت حالا کی تو پول خواست؟ ملیه به من نگاه کرد اشتیاق سوار شدن رو در چشمایش میدیدم. گفتم برو بالا من میام گفت نه ما میای. چیزی نمونده به من نگفت به موسا گفت موسا گفت به جهنم هر دوتاتون سوارشین بچه ها هورا کشیدن دو دستشان را دراز کردن تا کمکمان کنن سوار شویم. سی میگذارم روی داشت بردوانت موسا هرچه تعارف میکنند پس نمیگیرم راه میفتم به کوچه شهید تاج و دینی میپیچم مونیر مرا که میبید بافتنی رو روی میز پرت می کند و به بالا میآید. دستها و صورتش گرم است. بیا! بیا کنار الائین خودتو گرم کن صورتت یخ کرده کتابخانه مثل همیشه خالی از مشتری است روی صندلی که مانیر خاانوم میآورد مینشینم و دستهایم را روی اللاائین می گیرم. چه عجب از خونه بیرون اومدی لبخند میزنم هاجاقا چطوره؟ چی شده دلش اومد عروس خوشگلش رو بفرسته بیرون مانیر خانم یک ریز حرف میزند به کتاب داخل قفسه ها نگاه میکنم فکر میکنم از چهار ماه پیش هیچ کتابی جابجا جا نشده است مونا چطوره؟ اونم خوبه خوبه تو چطوری؟ خوب میخوری و میخوابی ها؟ فعلا که بستنمون به آخر کاهو جو فراوونه دور از جون دور از جون الحمدالله آقابت به خیف شدی ناشکری نکن من اگه جایی تو بودم هر شب درکت نماز شکر به جا می آوردم پسرم او چطوره؟ خوبه میدونی معاون مدرسه شده چه خوب سفارش شوهر جونت خانم خانوما روحامی پس کی؟ پسر پسرخالهٔ من اینا که آبشون توی جو نهمیرفت به بیا ببین پسرمو چی شده نون و آب از دهنش میفته هاجاق ا هاجاقا نهمییفته به ساعت دیواری کتابخانه نگاه میکنم ساعت یک رو به دوازده است بلند میشوم باید برم، سلام به پسرمو برسون، یه بوس عابدرم از منا بکن مانیر تعارف می میکند و بعد تا دم در بدرقه می میکند از کتابخانه که دور میشوم به خودم میگویم، این آخرین سنگر بود، حالا نوبت عقب است بعد از سه ماه جعبه لوازم آرایشم را باز می کنم. اولین چیزی که بر می دارم روژلب رنگی است که کاربردش را میدانم. وقتی نوبت به مداد چشم می رسد، اشکم در می آید تا خط کج و معوجی زیر پلکاییم بکشم. ابروهایم را با همان مداد پر رنگ می کنم. پشت پلکایم را رنگ بنفش میزنم می زنم. تغییر کرده. رنگ پشت پلکایم را پاک می کنم. توی زوق میزند جعبه را زیر و رو میکنم وسایل دیگری هست که کاربردشان را نمیدانم جعبه را میبندم موهایم هنوز خیص هستند هوله را برمیدارم و موهایم را لای هوله میپیچم کمرم درد میکند فکر میکنم به خاطر پریدن از دیوار است. بوی آبگوش تمام خانه را پر کرده است. منتظر صدای ماشین نشستم تلویزیون را رو روشن میکنم، فیلم مستندی درباره آبزیان دریایی نشان میدهد. صدای ماشین را که میشنوم، هوله را از سرم باز میکنم. با شتاب موهایم را برس میکشم، جلوی در می و منتظرش میمانم. در را که باز میکند، مثل سگی که بگوید واق، میپرم جلو و میگویم سلام. می و برای لحظه‌ای به صورتم زل میزند. میخندم. او هم می خندد. پلاستیکی را که در دستش دارد زمین می گذارد. آغوش باز می کند و من بدون هیچ احساس گناه و شرمی در آغوشش قرار می گیرم. بعضی ها امشب سنگ تموم گذاشتن؟ ادای بو کشیدن درنیآورد. فکر نمی‌کنم، بعضی دیگه منتظرشون هستن خیلی دیرخونه میان. منذرت معذرت بعضی اگه بدونن همیشه ازشون اینطوری استقبال میشه اصلا سر کار نمیرن رهایم میکند و وارد اتاق خواب میشود دنبالش میروم اوورکوتش را در میآورد و به چوب رختی آویزان میکند به چارچوب در تکیه میدهم و تماشایش میکنم به قول خودتون تازه خریدی؟ اولا ما میگیم مگه شب خریدی؟ دومن آره همین امروز زهر خریدم. پس ما این سه ماه ویل معتد بودیم. ای! حالا از خریدت رازی هستی؟ سر را برانداز میکنم. ای! بدک نیست. میشه تحملش کرد. کمربند شلوارش را میکشد و به طرف من حجوم میآورد. فرار میکنم و دور حال میچرخم و او با کمربند دنبالم میکند. پایم به پلاستیک میگیرد و پلاستیک روی زمین کشیده میشود. می ایستم. خم میشود پلاستیک را برمیدارد. دستم را میگیرد و کنار خودش مینشاند. میخوام یه خبر عالی بهت بدم. میدونم. هاجواج نگاهم میکند. از کجا میدونی؟ از اونجایی که هر لحظه منتظرش بودم. تو منتظرش بودی؟ میخوام بگویم. بله من منتظرش بودم چون برای زاییدن انتخاب شده بودم. نمیگویم. میگویم. خب؟ جناب پدر. حالا چه کار کنیم؟ سرش رو روی شانه هم میگذارد. آهسته میگوید. خواهش میکنم چند دقیقه حرف نزن. میخوام این لحظه شیرین و مزه مزه کنم. سکوت طولانی نمیشود. شانه هم درد گرفته. نمیتوانم تحمل کنم. آهسته می گویم، جناب پدر میشه این مادر بیچاره را اینقدر نکنید؟ سرش را از روی شانه بر پلاستیک را جلو می کشد. حالا چشاتو ببند، چشمهایم را می و فکر می کنم این بازی قشنگتر از بازی های این سه ماه است صدای جیرینگ جیرینگ را که میشنوم ناخودآگاه چشمهایم را باز می کنم. رنگی جلوی چشمهایم تکان می‌خورد. میخندم. فکر کردم الان یه گردنبند برلیان رو گردنم سبز میشه جغجغه تابوی ذهنم بود امشب این تابو شکست جغجغه را میگیرم و جلوی چشم‌هایم تکان میدهم چشمهایش را میبندد فکر میکنم یعنی وجود بچه اینقدر مهمه چشمهایش را باز میکند حالا تو چشماتو ببند گردنبند برلیان دیگه چشمایم رو میبندم. دستم رو میگیرد. مدتی طول میکشد. چشمایم را نیمه باز میکنم. تقلب ممنون. چشمایم رو باز نمیکنم. هنوز منتظرم. دستم را بالا میبرد و میبوزد. متشکرم گل. از همه چیز متشکرم. حالا عیب نداره. انگشتر برلیانم بدک نیست. به انگشتری نگاه میکنم. ماره حلقه زده است که دومش زیر انگشت و سرش روی انگشتم است تلافروشه گفت که فعلا اینا مده پس شما هم پیرو مد هستین چشم ما روشن یه چیز دیگه هم هست یعنی باز باید چش بذارم؟ نه لازم نیست از داخل پلاستیک کتابی بیرون میکشد. کشد نه ماه انتظار بچه توپرموپولی روی جلد کتاب اورین نشسته است و لبخند میزند، تاجی زرف‌های های صبحانه را جمع می کند. با اوج گرفتن کمر دردم دکتر برایم استراحت مطلق تجویز کرده است روحامی اوورکوتش را بر در آشپزخانه را می‌بندد، کنارم می بالش‌های پشت سرم را مرتب می کند. دستم را می گیرد. صدای زرف شستن تاجی از آشپزخانه می آید. شش یا هفت روز بیشتر طول نمیکشه شش افروز کم نیست سر تکان میدهد از جا تکون نمیخوری حس خردروشتیت گل نکنه هر کاری داشتی به تاجی میگی اون برای همین اینجاست خم میشود از روی کمم را رو میبوسد مواظب پسرم باش اشک در کاسه ی پایم جمع شده دلم میخواهد بلند شوم و تا دم در همراهیش کنم دلم میخواهد از زیر قرآن بگذرانمش دلم میخواهد تا خم کوچه تا آنجا که چشم میبیند بیایستم و رفتنش رو تماشا کنم تاجی خانوم بله حاجقا. دیگه سفارش نمی کنم نظاری از جشتکون بخوره از دوله هر روز میاد بهتون سر میزنه هر کاری داشتیم بهش بگین خاطر جم بریم به سلامت به خیر خوشی صدای بوغ ماشین را می شنبم. باید از دللا باشد تاجی تاجیبه آشپزخانه برمیگردد پتو را روی سرم میکشم. کشم عشقایم جاری می شود گفتگو شروع می شود براش گریه می کنی؟ آره اون رفت معموریت میدونم میدونی معموریتش چی بود؟ مربوط به امنیت منطقه میشه حضور اشرار تو باور کردی؟ اون دروغ نمیگه. خب اگه معمولیت رفته چرا داری گریه میکنی؟ نمیدونه. نمیدونی؟ نه. دوستش داری؟ فکر میکنم. دوستش نداری. بهش عادت کردی. به کسیت رو جبران کرده. میترسی برو دیگه نیاد مثل سعید. اون وقت دوباره بیپناه بشی. شاید اینطور باشه. نمیدونم صدای زنگ گفتگوی ذهنیم را در هم میریزد تاجی از آشپزخانه بیرون میاید این موقعی صبح کیه؟ شاید حاجی چیزی فراموش کرده دلت میخواد برگرده؟ آره دلت میخواد این شغل رو نداشت؟ آره از شغلش متنفری از موقعیتش متنفری میخوای از گذشتش جداش کنی. نمیدونم شغلش چیه. هر وقت چیزی میپرسم میگه نمیخوام دوباره شروع به بازسازی تصویری بکنی که؟ کدوم تصویر؟ تصویر مردی که با آهنگی صداش پوچکا بر سنگ قبر اختر فرود میآمدند دوچار تناقضی؟ نمیدونی چی میخوای چی نمیخوای. صدای جیغ مرغ و خروس میشنم. خودم را بالا میکشم، و به بالش هایی پشت سرم تکیه می دهم. مادرم را می شنوم. کجا میره؟ صدای تاجی را می گمونم تیران. مادر چادر مشکی پوشیده. گوشه ی از زنبیل قرمز رنگش از زیر چادر پیداست. جلوتر از تاجی وارد می شود. سلام می کنم. زنبیلش را از زیر چادر در می آورد گوشه حال می گذارد. دبه یه دوق را می بینم کاش کی رسیده بودم میگفتم برای پادردم یه پمادی چیزی بیاره مگه نرفتی دکتر؟ رفتم یه مشحبه به خاصیت بشم داد چیزی نمیگویم. با آخوناله کنارم می نشیند به دکترهای اینجا اعتقاد ندارد پای راستش را دراز میکند. کند چهرهش سفیدتر شده است حالا که ایشالا بر شش هفت روز دیگه خب می اومد دنبالم خودم می اومدم کنارت تاجی خانم هست تو که نمیتونی داوودو تنها بذاری خداوودم خب می اومد ایجا. مادرم میداند خوش ندارم با او باشم حالا که تنها گیرم آورده میخواهد جنگ را شروع کند تاجی برایش چای میآورد سینی چای را پس میراند سر دلم ترش کرده نمیتونم چایی بخورم. بهشم نمیسازه. دوا شرق کتکتوه. ایشالا برم ابراهیم آباد برات میارم. دستت درد نکنه. هر که گفته خوردم. من یه افاقه میکنه. تاجی سینی چای را برمیدارد و به آشپزخانه برمیگردد. میگفتی داوود زور بیاد ایجا. من که نمیدونستم حاجی نیست. گفتم بیام یه سری بزنم برم نمیدانم چرا مادرم و روحامی میلی به دیدن همدیگر ندارند احساس میکنم روحامی از مادرم خوشش نمیآید. اما نمیدانم چرا مادرم از برخورد با روحامی فرار میکند مطمئنم مادرم می دانسته که روحامی امروز به ماموریت می رود خودم دو روز پیش که داوود نهار پیشم آمده بود به او گفته بودم چشمم به زنبیل مادر است دوست دارم دیوانی دوغ محلی بخورم چرا زحمت کشیدی ننه؟ چی زحمتی؟ تو که نمیگی چی دلت میخواد تا بیارم یک کمی آوردم ایه مثل خودم باشی و بچت پسر باشه ویارت قرقروده تا به حال میلی به قرقرود نداشتم اما نمیدانم حالا که آن را برای ما ورده چه بگویم دست درد نکنه میترسم بخورم سردیم کنه سردید کنه؟ سر داوود سه وعده قرقروت میخوردم. ناشتای چونه ایقدری میخوردم. مشتش را به اندازه یک گلوله ی برف باز میکند. زنبیلی را جلو میکشد. دبه یه دوغ و ظرف تخم مرغ و پلاستیک قرقرود را بیرون میگذارد. آهسته میگوید، بگو بیا اینا به ببره بزار یخچال. صدا میزنم. تاجی خانم؟ بله. بی زحمت اینا رو بذارین یخچال تاجی دبه دوغ و ظرف تخمه مرغ محلی را بر مادرم پدستیک قرقرود را باز می کند تکه جدا می کند و به طرفم می‌گیرد. تاجی می گوید سر صبح قرقرود پشش میدین ای من بزرگش کردم میدونم چی برش خوبه چی بده لحن مادر اتابا است تاجی چیزی نمیگوید. گوید، به آشمازخانه می رود، تکه ای از قرقرود جدا می کنم و در دهانم میگذارم. گذارم، چهرم را در هم می کشم، آهسته می گوید، روح به شش نده، سوارت میشه. چیزی نمی گویم، خودم را به خوردن قرقرود مشغول می کنم. تاجی بر می گردد، نهار چی درست کنم، گل بانو خانم، هرچی دوستری درست کن، مادرم می گوید، چطور تو هرچی دوست داره درست کنه؟ تو مثلا اشکم داری؟ ویار داری؟ خب بگو چی دلت میخوا تا برشت درست بکنه؟ از لحن مادرم خوشم نمی آید. داجی میگوید آبگوشت بوزباش درست کنم گل بانو با خانو؟ مادرم میگوید میخوای یکی از خروسهایی که اووردم بدم بکشن برات کباب کنم؟ این لحن مادرم را میشناسم نسن خبری اشت خبریست برای من برایت خروس آوردم. میدانم که احتمالاً یک جوجه خروس چند ماهه آورده. و اختاریست به تاجی به دخترم بهتر برس. ها نه, نه. چی میگی؟ راستش حوث آبگوشت بزباش کردم. یه وقت سردید نکنه. تاجی می نه حاجی اصلاً گوشت بز نمیگیره. تاجی به آشپسخانه برمیگردد یکی از بالش پشت سرم را بر و به طرف مادرم می گیرم بذار پشت سرت بالش را می گیرد و به رویی آن نگاه می کند ایجا چه کار رو بالش زیاد نگاه کن؟ میدانم ویرش گرفته است تا تاجی را عذیت کند تمیز ننه یه ماه نمیشه شستیمشون مادرم پتویی را که رویم است زیر و رو می کند. تاجی خانوم تاجی با صورت اشکالود از آشمزخانه بیرون میاید کار در یک دستش است و پیاز نیمه خورد شده در دست دیگرش شما که ماشالله زن سنو سالداری هستین حالا این بچه است سرد و گرم نچشیده به این روبالشی ها نگاه کن حتما شبم هم همین بالش و حاجی میذاره زیر سرش حالا اون نجابت داره هیچی نمیگه شما که باید بفهمین اون که مثل ما داتی نیست، بچه ی تیرونه، ای چیه، ها؟ ای چیه؟ احساس میکنم روح توران خانوم مادر اختر در جان مادرم حلول کرده است. ملیحه خودش را در آغوشم اندازد و زار زار گریه میکند. بیشتر از آنکه به گریه ملیه فکر کنم، مواظب شکم برآمده‌ام هستم. با یک دستم او را در بغل گرفتم و دست دیگرم را حایل او و شکمم کردم. چیه ملیه؟ چرا گریه میکنی دختر؟ فقط گریه میکند. اولین بار است به خانه ام آمده. هفت ماه پیش خبر آزادی محسن را از مادرم شنیدم آن روزها فکر میکردم بالاخره ملیه و محسن ازدواج میکنند و من از شر نامه هایشان خلاص میشدم گل بانو پیشونی نوشته من میبینی؟ از خودم جدایش میکنم و با دست عشقایش را پاک میکنم چیه ملیه؟ چی شده نصف جونم کردی حرف زن؟ چی بگم گلبانو چی بگم تاجی فین فین می کند. گریه ملیحه او را هم به گریه انداخته است تاجی خانم بی زحمت یه لیوان آب برای ملیحه بیاری. ملیحه هق می میکند حلقه سیاهی دور چشمهایش شکل گرفته است این حلقه را قبلا ندیدم به نظرم از آخرین باری که دیدمش لاغرتر شده است تاجی لیوان آب را به دست ملیحه می‌دهد بدون اینکه آب بخورد لیوان را زمین می‌گذارد تاجی ایستاده است و من فکر می‌کنم ملیحه نمی‌خواهد جلو تاجی چیزی بگوید چرا بهش نمیگی بره تو آشپزخونه درو رو ببنده روم نمیشه آدم ترسوی هستی ترسو نیستم عادت ندارم به کسی دستور بدم دستور دادن دادم جوربزه میخواد تو نداری دستور دادم میخواد من ندارم با صدای بلندتر از حد معمول میگویم بیا تو اتاق ملیه نمیدانم با این صدای بلند به جنگجویان درونم اختار دادم یا به تاجی تاجی کمک میکند روی تشکی که در اتاق پهنست بنشینم و به بالش ها بدهم. بدم شبها در این اتاق میخوابم و روزها در حال روبروی تلویزیون و کنار ردیف رمانهایی چیده شده ملیه کنارم مینشیند تا تاجی بیرون می رود و در را می بندد خب حالا بگو ببینم چی شده خبر نداری تو که وضعیت منو می بینی هفت ماه از خونه بیرون نرفتم محسن رفت گل بانو محسن از دست رفت دوباره گریه را شروع می کند ای بابا چه خبرته خود پدر پیر رو بیا مرزه دستانش گلبانو بگو از اولش بگو هفت ماه پیش که آزاد شد به خودم گفتم دیگه همه چی تموم شد میریم یه عقد محضری میکنیم از ای دیار میریم از گرگورای مادرم خسته شده بودم گل بانو اول که اصلا نمیخواست منو ببینه رفته بود تو اتاق در رو هم رو خودش بسته بود بداخره اونقدر امم از جزکی است که اومد بیرون راست تو چشام نگاه کرد و گفت برو فکری به حال خودت بکن وضعیت من معلوم نیست انگار نه انگار نشون کردشم نومزدشم دختردائیشم انگار نه انگار به پاش سبر کردم حرفای اینو و تاب رو خلاصه اگه پادرمیونی میونی ها نبود همون روز اول ول می کرد می اصلا محسن گلبان و اون محسن نبود یه جوری شده بود اگه دو ساعتم توی اتاق تنها بودیم مثل سنگ می و به در و دیوار نگاه می کن یه روزه گفت ملیحه نمیگم دوست ندارم دارم ولی جای من اینجا نیست من میخوام از این مملکت برم تو هم اگه میخوای عروس بشی بشو پاسوز من نشو اگرم هنوز سر عهد و پیمونت هستی منتظر بمون خودم که برم یه جوری تو رو هم میکشم کشم همین هرچی گریه اوزاری کردم هر کار کردم بلکه بتونم رهیشو بزنم نشد که نشد بدون خدافزی یه روز ناپدید شد من به همه می گفت محسن رفته کرمون سر کار کدوم کار کدوم با تا اینکه یه هفته پیش سکوت می کند خب یعنی تو از هیچی خبر نداری؟ نه به خدا من فقط می دونستم آزاد شده راستش همش منتظر خبر شنیدن ار بودم یه هفته پیش شایعه شد مشراهیم صدای محسن از رادیو عراق شنیده گفته هر شب رادیو عراق میگرفته بلکه صدای حیدر رو بشنفه گفته محسن همش به اینا فوش میده و ناسزا می گفته می گل بانو بخت اقبال منو میبینی حالا حالا مشرحیم مطمئنی صدای محسن بوده؟ ها خودش بوده اسمش رو نگفته یه اسم علیکی گفته دو سه روز بعد نیروهای سباه ریختن خونه امم و گشتن حتی یه نفر فرستادن تو چاه آب رو هم نگاه کرده بعدش دو روز پیش اومدن دنبال من بردنم بافت روز اول یه خانومی سوال کرد سه ساعت از من بازجویی میکرد چه چیزا که نپرسید خب خب که خب دوباره دیروز اومدن بردنم ای بار یه آقای سوال کرد چی از تو میخواستن؟ نمیدونم گمونم میخواستم بدونم از جانب محسن کسی پیش من اومده یا نه اومده؟ وا خاک تو سرم من اصلا از موس خبر ندارم عجب روزگاریه نمیدانم چرا این جمله را گفتم انگار بخشی از مجادله درونم به زبانم جاری شده است گلبانو نمیدونم چه کار کنم اینو بازم میان سراغم من میترسم از چی می ترسی؟ تو که کاری نکردی؟ من که نکردم ولی اون از خدا بیخبر که کرده خب به تو چه؟ دستشون به اون نمیرسه تو رو گرفتن؟ صدای در و بعد صدای یالله یالله روحامی را می شنبم ملیه خودش را جمع جور می کند اینجا نمیاد راحت باش گل بانو اومدم خواهش کنم به آقای روحامی بگی اینا دست از سر من وردارم دیگه آبرو برامون نمونده تا که میدونی تو این محیط کوچک مردم چه حرفا که نمیزنن بغس میکند دستم را رو روی شانهش میکنم نه ترس انشالله همه چی درست میشه ملیه بلند میشود و ناگهان یاد نامههایی که پیشم به امانت گذاشته میافتم ببین از نامه که چیزی نگفتی نه اصلا میخوای نابودشون بکنم؟ نگاه هم می کند. احساس میکنم دلش نمیخواد ماما ها از بین بروند نگران نباش نترسم نترسم مگه میشه نترسم گلبانو بانم تا خودت میدونی من اهل این حرفا نیستم من فقط اونو دوست داشتم خب پسرم من بود از بچگی اسمش روم بود من که اهل سیاست و ای حرفا نبودم چیزی عالیم نبود اگه دلم میخواد اون نامه ها بمونن خاطر اینه که میخوام یه یادگاری حساش داشته باشم میدونم خودتو ناراحت نکن نامه ها جاشون امنه صدای صحبت کردن تاجی و روحامی را میشنوم بلند میشود باید برم فقط اگه آقای روحامی میتونه، بهش میگم. هر کاری از دستش بر بیاد برات انجام میده. منم بی خبر گیج و سرگردان توی حال سرک میکشد. احساس میکنم از روبه رو شدن با روحامی حراس دارد. وقتی میرود، روحامی وارد اتاق میشود. بهبه، خانم خانم ها مهمون داشتن. ملیهه بود. حالا چرا دلخوری می نشیند. به بالش ها تکیه می دهد و دستش را روی شانه میگذارد. می گذارد. جریانش می نه؟ همه میدونن؟ همه میدونن دونن. اون وقت من که دوستشم نباید بدونم. نرمه ی گوشم رو می کشد. این چیزا ارزش دونستن نداره خانم خانوما؟ دستش را کنار میزنم. حالا اون پسره رفته چرت و پرت گفته. شما چه کار این دختره بیچاره داریم؟ ما؟ آره. دوبار تا به حال بردینش برا بازجویی بردیمش؟ من بردمش؟ خودتو به اون راه نزن. مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ این بار گونه هم را میگیرد و میکشد. ببین خانم خانوما قرار نشد دوباره شروع کنی هرس و جوش برات خوب نیستا یه کاری براش بکن ابراهیم بیچاره خیلی ترسیده آخه اون که نداره اولا به عرض خانم خانوما برسونم بنده کاری نیستم دوما مطمئن باش با این کاری ندارن وا هر روز دارن میکشوننش اینور اونور اون وقت اون وقت مامان کوچوله ای ما اینجا نشسته داره هرس میخوره تاجی در میزند. زند. روحامی دستش را از پشتن بر می دارد و خودش را کنار می کشد. بفرما. تاجی در را نیمه باز می کند و می گوید. ها جاقا چایی می خوریم براتون بیارم؟